خوب. باب المسح على الخفين باب مسح بر ذخوف خوف همون جورابای چرمی هست که می پوشند این تبلغه منطقه خودمون می اونو اون میگن چه خوف باب مسح کردن بر یا یجوز اذا لبس خفيه على طهر کامل ان يمسح عليهما بدلا من غسل رجليه اذا ستره قدمیه بما امکن مطابعتو المشی علیه ولم یسل بلل الماء منهما هما الى رجلی جائز است زمانی که پوشیده دو خف رو دو موزه رو برپاکی کامل یعنی که داشت و اومد چکار کرد میگه جایز زمانی که پوشیده بود دو خف بر پاکی کامل که مسح بکند بر اون دو خف به جای شستن دو پا ولی با این شرایط زمانی که اون دو خف دو پایش رو پوشیده بودند اغاثت را قدمهی زمانی که اون خف اون خفها پاهایش رو چکار کرده بودند؟ پوشیده بودند و می توانست با اونها چی بکنند راه برود. یعنی خوفها بگونی بودن که در اونها امکان راه رفتن بود ولمی یسی بلل للمائی من همه الى رجله و بگونی هم که اون خیسی دو پا برسه ولم یا سلبال لول ماء و نرسد خیسی ما آب تری آب بدون پایش سوراخ نباشن یا گوره نازوک نباشن زمانی که میخواد رو مسح کنه این خیسی بچه برسه به پا برسه ولا يجوز ان يمسح عليهما بدل من غسل رجله و جائز نیست مسح بکنند بردو خوف ولا يجوز ان يمسح عليهما وجائز ليسك مسح بکند علیهما براندو بدلا من غسل رجله بجای شستن دو پایش خب جملش کجای پس زمانی جائز هست که مسح بکنه که این دو تا خف و چه زمان پوشیده باشه؟ برپاکی فا اینکانم مقیمن مسح علیه من وقت حدفیهی یو من و لیلتا اگر مقیم بود الان وقت نمیشه یک ماه پوش سرهم پاها رو اصلا نشسته وقتا إن كارده براي مقيم يك شوانا الروز وبراي مسافر سو شوانا روز بيقى فإن كان مقيما مسح عليهما من وقت حدثه يوما وليلة أگر مقيم بود مسح ميكوني بروندو تخوف الزماني كي بيوزو شده يك شوانا الروز وإن كان مسافرا مسح ثلاثة أيام ولياليهن وأگر مسافر بود مسح میکنه از زمانی که بیوزو شده سه شبانه روز سه روز و سه شب ولا يجوز ان يمسح على جوربینی ولا نعلين و جائز نیست که مسح بکند بر دو جوراب و همچنین بر نعل بر پایی ها ولا على العمامه بدلا من مسح الراس و نمیتونه مسح کنه بر عمامه بجای مسح سر چون اینا مسائل اختلافی هستند در نزد فقهای دیگه جایزان اینا رو داره کار میکنه ذکر میکنه مثلا در جورابن اختلاف هست در نعل هم چنین و در عمامه هم چنین و يمسح اعلى و واسفله میگه مسح میکنه بالای خف رو وزیرش رو هم فا این اقتصر على مسح الاعلا او بعضه اجزئه اگر اکتفا کرد بر مسح بالای خف یا بر قسمتی از خف بر قسمتی از بالای خف البته نزیرش کافیست ولو مسح اسفله او ساقه لم یجیزه اما اگر اومد فقط زیرش رو چی کار کرد؟ مست کرد یا ساقش رو اومد کرد این دیگه جایز نیست اصل بر اینه که این بالاش بشه نزیرش و ایده نزع خفهی او تخرق خفاهو او انقض زمان المسیح غسل رجله و زمانی که کشید دو خفر یا پاره شد بگونه که اون پاش ظاهر شد اون قسمت که در شستن فرض هست یا اینکه زمان مسح تموم شد اینجا دیگه میاد دو رو چه کار میکنه؟ میشورد و استعنفل المسح بعد لباس خفه و اون مسح کردن رو از سر نو دوباره شروع میکنه بعد از پوشیدنه دو خفش. پس با پاره شدن بگونهی که قدم پاش آشکار بشه اون قسمتی که شستنش فرضه یا تموم شدن وقت یا کشیدن خفه ها در این حالت ها باید باها رو بشوره و بعد از پوشیدن از سر نچکار بکنه شروع بکنه وقتشو اين الجمله برتو هل مو ولا يجوز ان يمسح عليهما بدلا من غسل رجليه؟ نين مش بدلا؟ اا تشي تو لا يجوز ان يمسح ها لا يجوز ان يمسحها عليهما من غسل الرجلين بدلا من ياردة. تشي ليشته بركوي؟ لا يجوز ان يمسحها عليهما من غسل الرجلين يعني بدلا من ياردة. اشتبا لا يجوز أن يمسح عليهما من غسل الرجلين خب معنیش اینه که جایز نیست که مسح بکنه برون دو یعنی برون دو خوف از شستن دوبا یعنی می جای شستن دوبا خود خودش حل شده با تا جا به توضیحات منظورش که هست پس